بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و على سیدنا و محمد و على الطيبين الطاهرين تاهرین لَا ما مَا الله اللَّهُ فِي <تصفيق> اللهم انت السلام و من السلام ولك السلام و يعود السلام سبحان ربك رب العزت عما یسفون و سلامون علی المرسلین لله رب العالمین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 السلام و علی صدیقت السلام و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین السلام و علی علی ابن الحسین زین العابدین السلام و علی محمد ابن علی باقر علم النبین السلام و علی جعفر ابن محمد الصادق السلام و علی موسی ابن جعفر الکاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجت بن الحسن القائم <تصفيق> اللهم کن لوليك که الحجت ابن الحسن صلوات عليه وعلى و آبائه فی هذه صاعه و فی کل وليا وحافظا وقائدا حافظه و وعينا و تسكنه و دلیله و فيها حتی و و اللهم اجل لولی الفرج و جعلنامن صاری و عواه حوزو به الله من از الرجيم. رجیم و ضا صال که وادییم فنی غریب و غجیب و ده و تدعع اض ده آن هل استجیبلی و لیوم نوبی لله هم یا شدیم خب ماسه جلسه دیگه تا محرم داریم جلسه آینده که شام غدیره و ان شاء الله هفته آینده برنامه ویژه جشن قدیر خواهد بود لذا هفته آینده برنامه تغییر خواهد کرد من این جلسه یه مقداری باز پیرامون همین آیه بحث خواهم داشت و بیاری خدا با انایت مولایمون امام اصر روحی و العالمین لطراب مقدم الفدا انشاءالله آخرین جلسه زلحجه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 غیر از خواستهامون رو از خدا بخواهیم که خداوند از قدرت غیبی خود و انایت الهی خود ما را برخوردار کند این یک جنبه غذیه است ولی به نظر میرسد با توجه به آیات و روایات جنبه برتری هم دارد اون جنبه برتر برای کسی که دعا میکند اگر به حاجت خود هم نرسد بر فرض خداوند جواب او را هم ندهد که چنین نیست در این حال به نتیجه و سمره می میرسد که دعا اون کمال و ارزش رو ایجاد میکنه اون چیست بقا و تداوم ارتباط صحیح با پروردگار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 اگر آب زلال رو در خواب ببینه در آب زلالی قرار گرفته است این تعبیر شده تعویل شده به علم سالمی که گیرش میاد اگر در خواب ببیند در باقی سبزه خور از محصولات سرسبزه کشاورزی و گیاهی قرار گرفته تعویل شده که درجه ولایتش قویتر تر خواهد شده انشاء الله اگر این تشبیه رو کردم با توجه به اونچه که روایات ختمیده دارم کنم. حالا بیایم در عالم روحی هم روح ما در چه فضایی سیر میکنه یک زمان روح حتی در عالم خیال خیال روحی در عالم تصورات ذهنی در عالم بگو های تبادل نظری و اندیشه‌ای روح در عالم شکم شهوت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 یه گرفتاری برام پیش اومده دعا کنم حالا حدیث براتون میخونم اینان حدیث بیان میکنه میگه چرا قبل از یک مشکل پیدا کنی دعا نمیکنی حتی روایت در حالا میکنم که وقتی بنده ای یه گرفتاری شد دعا میکنه فرشتگان الهی میگن امشب از کافی حدیث میخونم میکنم سرشتگان الهی میگن این صدا خیلی برای ما آشنا نیست این تا حالا کجا بود؟ چطور تو مشکل قرار گرفت؟ صداش در اومد، نالش بالا اومد چرا قبل از این مشکل صدای یارب یارب بالا نمی اومد؟ اصلا ما حاجت و فعلا در نظر نگیریم مشکلاتمون رو فعلا در نظر نگیریم خود اینکه با خدا حالا این تعبیر رو به کار ببرم خوشک مقدسی در نیاریم بگیم عرفا چیه؟ با خدا عشق بازی کنیم خدا یا دوست دارم حالا به تعابیری که معصومین به ما یاد دادن شما مناجات مثلا خمس عشر امام سجاد عليه السلام رو توجه کنید این همه نقمه های محبت و دوستی و عشق و انس و الفت با پروردگار عالم در خیلی از این عدیه اگر دقت کنید رابطه ای که با خدا مطرح میشه نسبت به اون چه که از خدا میخواد اون قریه تره نه اینکه که نخایده اونم عرض میکنم حتی داره که حاجتی که دارید اسمم ببرید کلی هم نگید اب نداره و این خوبه چرا شو عرض کنم. اما فعلا دارم اصل دعا رو عرض می کنم اصل دعا روح را در عالم معنا سیر دادنه اون حقیقت وجود انسان رو تو عالم ملکوت بردنه وقتی خدا خدا میکنید، وقتی رب رب به خصوص موقعهای خاص دعا که اگر رسیدم امشب بنا دارم روایات شو بخونم انشاءالله مثل سهر مثلا عجیب روایت داره سهر پاشید با خدا حرف بزنی. سر ظهر زوال ظهر با خدا حرف بزنید دم اذان مغرب با خدا حرف بزنید و افزل اوقات رو فرموده سهر یعنی اون موقعی که از قیل و غال زندگی خودتونو کنار کشیدید با خدا سخن بگید این سخن گفتن با خدا روح رو میبره در عالم معنا روح که رفت در عالم معنا کم کم انس معنوی پیدا میکنه من اجازه بدید دو تیکه از نحج البلاغه در این رابطه خیلی سری و گذرا احتمال میدم به احتمال خیلی قوی اکثر شما با این دو قسمت نحجل بلاقه آشنایید و شایدم حفظ باشید ولی من به جهت کاربردش نسبت به این بحث ناچارم که اشاره بکنم در بخش کلمات قصار نحجل بلاقه شماره 147 همون مطلبی که معروف بارهام شنیدید المؤمنین علیه السلام دست کمیلو گرفتند از شهر کوفه بیرونشون بردن در ددلی با او مطرح کردند تا اونجا که حقائق در این سینه جمع شده از تنگی میکند افراد لایقی نمی بینم که به اونها تحویل بدم چون مردم دستند یه اده فعالن، زیرکن، تیزن، کوشاین ولی آدمای های بیدینین ولی دنیاشون انقدر فعالن اینا که به درد علی نمی خورن. دسته دوم آدمای های دین براشون مطرحه، معنویت براشون مطرحه ولی آدمای های کودن، بیحال، آدم بی اون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 الاقلون عددا خیلی کمند قران میفرمازد و هم لا یعبلون و کذا و کذا و کذا اینا خیلی کمند و لعظمون عند الله را اما در پیشگاه خدا از نظر قدر عند الله خیلی عظیمه خیلی بزرگند یحفظ الله بهم حججه و بیناته من با خیلی از بزرگان راجب این کلمات قصار مشورت کردم، نظر خواستم، بحث کردم و نظر گرفتم و بسیاری از شروع نهد البلاقه راجب این مطلب دیدم که آیا این فقط راجب امام اصر علیه السلام و ائمه اطهار علیه مسلامه یا پیروان راستین امامان که امیرالمؤمنین المؤمنین میخواد انسانها به اینجا برسند همه اونهایی که دقیق بودن گفتن نه ائمه که شهنشون اجله حضرت داره سه دسته میکنه یعنی انسانه ها در این عالم سه دستن یه دسته اونجوری یه دسته اونجوری یه دسته اینجوری میشن من میخوام شیعه ها اینجوری بشن امام که شهنش اجله لذا اینا رو داره حضرت بیان میکنه اینو توجه داشته باشید یحفظ الله بهم به حججه و و بیناته خدا به وسیله اینها رو حفظ می‌کنه بینات و اون استدلال و اتمام رو برای مردم تا میرسه به اینجا منظورم این جمله است حجما بهم العلم الا حقیقت البسیره اصلا تمام وجود اینها را شناخت معرفت و علم جوری گرفته اصلا علم اینها هجوم آورده دقت بکنید هجوم رو در کجا میگن در اون حالتی که انسان در یک شرایطی واقع میشه از هر طرفی به طرفش مثل این که دارن سرازیر میشن اینه میگن حجوم فرض کنید یه موقع ما اینجا هستیم یه شیر سماوری بازه یه آب جریان پیدا کرد یه وقت سیل به طرف ما میاد یه وقت یه نفر ما رو میبینه میدون میاد یه وقت یه عده‌ای به طرف ما دارن مثلا میدوَن میان حجوم رو کجا میگن عبارت مولا رو دقت کنید حجم بهم علم، علا حقیقت البسیره اون چنان علم شناخت، معرفت به طرف اینها هجوم آورده با اون حقیقت بسارتی که بنات پیدا کنه و با روح روحل یقین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 تمام شراشر وجودش را جنبه یقین در عالم روحی فرا فرامی‌گیره. چی میشه یادت اینجوریه؟ چرا بعضیا هی دوچار تردید، هی دوچار شک، هی دوچار وسوسه، فکریشو میگم نه عملی. در عالم فکری دوچار تردید و وسوسه است، این ضعیفه. ولی وقتی در عالم معنا و فکر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 وابسته به دنیا برایشون سنگینه برای اینا راحته یعنی مثلا فرض بفرمایید عنوان مثال من مستاقی بحث میکنم حدیث مولا کلی میگه مثلا برای آدمای خیلی خوشگذران روزه ای کمی سخته برای اینا خیلی راحته برای آدمای وابسته به دنیا آقا از نامحرم بپوشید وای من توی شهرستانی بودم یه بنده خدایی به من برخورد کرد گفت آقا شما این آقای نباطی آیه قمبری که در شمیران هست میگن که دعا میده و افراد رو نواد فوت میکنه ایشون میشناسید گفتم بله میشناسم گفتن که برای مشکلات خوبه بهشون مراجعه کنی اما ایشون یه شرطی گذاشته خیلی سخته من فکر کردم چیخه میگفتم چی گذاشته من نشنیدم گفت ایشون گفته کسی پیش من بیاد که چهل روز متوالیان نمازش قضا نشده باشه مگه میشه 40 روز صبح نماز ما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 توان جسمیشو بالا میبره میگن آقا این تا قبل از این مرحله اینجوری نبود چون عشقش در اون وادیه یعنی روحش رفته تو اون وادی توان جسمیشم برده تو اون وادی خدا رحمت کنه مرحوم مهندس مصحف رو ایشون نقل میکرد حدود 30 سال قبل 35 سال قبل ما یه سفری از اینجا داشتیم می‌رفتیم اصفهان قم رسیدیم عده‌ای از مهندسین دانشگاه تهران بودیم میشون نقل میکرد گفتیم بریم دیدن علامه طباطبایی رحمت الله علی گفت دستاجام رفتیم خدمت مرحوم علامه و رجل الایی با اون علم و اون تقبا با اون, اون ز و پیرمر در میزدی زدی لرزان می اومد خودش درو وا میکرد خودش چای میخید این حرفا برای اینا دیگه توی وادی دیگری بود گفت ما یه ایده مهندسی دانشگاه تهران دانشجو خدمت مرحوم علامه نشاستین آقا اومدیم ما رو موعظه کنید مرحوم علامه سرشان رو پای خیلی فکر کرد اونایی که از نزدیک دیده بودن چون همیشه در حال تعمق و تفکر بود و به راحتی هم حرف نمیزد. مگر اینکه ازشون میخواستیم. یه مقداری فکر کرد سرش رو بلند کرد گفت من که کوچیکترم شما رو موعظه کنم یه حدیث از امام صادق علیه السلام براتون میخونم این حدیث رو برای ما خون من رو مصحف یادم نمیره میگه به قدر این حدیث به ما روحیه داد که ما تو کارمون فعال شدیم گفت امام صادق علیه السلام فرمودن حدیث در وسایل شیعه اومده جای دیگه هم اومده ما و بد اما قویت علیه نیت بدن ضعیف نمیشود وقتی نیت قوی باشه اهمی حرفه بیان امام صادق علیه السلام نیت چیه یعنی انگیزه روانی شما انگیزه نیت از کجا بر خیزه امام صادق علیه السلام تو مصباح و است جای دیگه هم هست ان نیت تبدو من القلب نیت از دل سرچشمه میگیره علاقت داره معرفت به اندازه‌ای که معرفت دارید و تختلف و مختلف میشه الا حسب اختلاف المعرفه اختلاف اختلاف معرفت چگونه است اختلاف نیت پیدا میشه نیت قوی شد نیت خدا نیت معنویت یادش بخیر رفقا بودن تو تل زینبیه گفتم اینجا بادی این شعر رو بخونیم براشون خوندم چند روز قبل گفتم تو تل زینبیه جاشه نیت زینب سلام الله علیها خداست تمام وجودش عشق به امام حسین علیه سلامه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 بابد خواهر پادشاه شهید مهیندخت میر عرب زینب است بنازم که گرم نماز شب است راز و نیاز و بسوز و گداز تو گویی که زهرا بابد در نماز چنان است که هرگز ندیده غمی زیاد خدا نیست قافل دمی ولی خوش دلو دختر مرتزاست زدل دل راضی و بر رضای خداست یا اگر اون شعر زیبای راجب ابوسمام ساعدی و نماز زهر آشورا باز یادش بخیر بین الحرمین برای رفقا خوندم از حرم از طب به حرم ما حسین گفتم اینجا باید عرض ادب کنیم وقتی میگه روز آشورا میان گیردار یک تن از اون بی بیقرار بود تمام سائدی بود نام وی کرده راه عشق را مردان تی در چنان قوغا و اون جنگ و جدال عشق افکندش به سوز و وجد و حال عشق وقتی پیدا شد نسبت به اون عالم عاشقانه از نم... دم همیزد از نماز اونجا میاد میگه آقا دلم خری یه نماز دیگه با شما بخونم وقت نمازی که میخواد بخونه چجوری نماز حرفه میخواد ما دعا میخواد ما تو, تو اون عالم ببره میخوام از نهج البلاغه استفاده کنم غیر از اینکه حاجت میخوای بالاتر برید تو دعا چی بخواید ما ببر تو اون عالم کدوم عالم جز خدا نبینی خدا دیدی چه میشه از اونجا به اینجا نگاه. یه بعد از اینجا بالا رو نگاه میکني از اینجا بالا رو نگاه میکنی خدا رو هم برای اینجا میبینی اما یه وخت خدا رو نگاه میکنی از خدا به اینجا نگاه میکني اینجا را هم برای خدا میبینی این چقدر فرق میکنه دعا میخواد ما خدایی بشیم نه خدا بشیم اشتباه نکنید وای از بد فهمی، وای از کمی معرفت خسته میشم بعضی وقتا آدمای کودن مذهبی خون به دل علی کردن اول خوارج دیگران فهمه ببرید بالا معارف مکتب دینی تو رو برید بالا اینقدر نحجل بلاغی میگه بفهمید درکتونو بالا ببرید ما آقا ما ما میخوایم بشینیم یه گوشه یا الله در چه حدی این حاجت همونی که صحیفه اه... کافی میگه اگه خدای الهی میداشت تو این جزیره علافا رو میخورد دیگه قصه ای نداشتن اینه تو خود کافی میگه امام صادق میگه نداره ولی وقتی تو دعا رو توجه میکنه؟ میگه وقتی عشق پیدا میشه بر مبنای عشق واقعا این ها شمشی رو نمیفهمیدن روزه هاشو نه اینکه حرف باشه مگه قرآن نمیگه این حرف قرآن بخونیم آقا این حرف های دراویش هست این حرف های دراویش حرف قرآنه مگه قرآن نمیگه در عشق مجازی وقتی یوسف رو دیدن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 تو طبقه سوم چارم میستادید دارید پایین نگاه میکنید اونقدر خسته اید که حال از پله پایین اومدن ندارید داریدره یه آقای گفت که دوست دارم هنر پیشه بشم گفت خب چه نقشی؟ گفت تو فیلما ها نش بازی کنم فقط منو کولکن بر اومر ببرم من نخوام را برم نخوام حرکت کنم. حالا مایه همچون نقشی تو طبقه سوم بازی کنیم یکی ما رو کنه بیار پایین حال پایین اومدن نداریم از بس خسته اید. باید ببینی عزیزی که دوست داری پایین افتاده پا شکسته. سرش خورد به سنگ خون داره فبران میکنه. شما به جهت حبی که به او دارید دوستش میدارید. خستگی سرتون میشه؟ چجوری از طرقی سوم میاید پایین شش تا پله با گلاجه ها یکی میپرید. چی شد تکون خوردی؟ چون رفتی تو وادی حب. حالا اگر حب به خدا شد. بح. دعا حب به خدا میخواد درست کنه.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 تو گودال قتلگاه زیر چکمه شمر زیر خنجر داره نغمه عاشقانه سر میده من روز آشورا براتون خوندم همه نوشتن و شمر رو جالسون صدره فزح کل و, و داره میخنده به چی میخنده لاهیر زن به رضایک من به قضایک لا معبود سواق عشقبازی کار هر شیاد نیست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 میخوام اگر این انصفشه ببخشیدامنه میخوام هندونی زیر بغل هم دیگه بذاریم تعریف بی نکنیم میخوایم به کمک همه انشاءالله روشت کنیم اونجوری که قرآن گفته لذا اگر تو حسینیه بیاد تو مسجد بره تو حرم بره حال حرف زدن با بغل دستی رو نداره همون جا میخواد یا قرآن بخونه یا گوش بده یا فکر کنه چرا گفتن مؤمن فکوره اوز میخوام اینو از من خواهرها برادرها توجه داشته باشید نمیدونم واقعا نمیدونم چقدر ماها عمر داریم چقدر میتونیم هر بار با هم دیگه بزنیم انشاءالله بزرگتر از ما برتر از ما میان بهتر برای شما توضیح میدن ولی یه مقدار شما را به جان عبی عبدالله تو این جلسات به صورت عملی به کجا میخواییم برسیم اینا رو بگیریم دل خوش نکنیم فقط میریم تو جلسه ثواب خدایش حفظ کنه یه اهل معنایی به من میگفت تو خیلی از سفرهای زیارتی ازشون نظر میخواستم میگفت انقدر چورت که چقدر ثواب بردی نیسه کنار اینارو رو ببین چقدر بالا رفتی خود میتونی بفهمی چقدر عوض شدی حال هواد حال هوای دیگه شد یا نه اینا رو ما تو جلسات می‌ریم حال هوا چقدر حال هوای با بغلدسی آقا پریشب کجاش بودی چی خوردن چی گفتن فلانی از سفر اومد چی خرید بابا لاقل تو فضای معنوی یا فکر کنیم چه کنیم به اون جایی که به ناس برسیم هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوزن در خمه یک کوچه ایم مولای منت و امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علی و باشرو روح الیقین و استلانو مستعوره المطرفون و آنسو به مستوحشمنه الجاهلون آنسو انس دارم علاقه انسو ببینید مثلا فرض کنید در عالم مادی مثال بزنم مادر بچه رو دوست داره پنج سال نبینه ده سال نبینه الان بعد از پنج سال ده سال به مادر بگی بچهت داره میاد سر از پا میشناسه اونس یعنی این دیگه امیرالمؤمنین میگه میگه اینهایی ای که روحشون به این یقین رسیده حجمه هجوم آورده به اینها علم علا حقیقت البسیره اینا چگونن آنسو به ما به یه چیزای اونس دارن که اس او وحشا من اہل جاهلون آدمایی که این علمو ندارن، این معرفتو ندارن، به این شناخت ها نرسیدن، اونا وحشت دارن از اینا، میگه باشه، شما وحشت، لذا دیدید مثلا بعضیا میگن آقا شما هر چی میخایید بخواید، دعای نصف شب و چشم تری ما را بس. اے؟ چشم تر میخواید هی بیداری نیست، من که حاجتامو گرفتم دیگه نیازی ندارم نصف شب بیدار بشم، میگه باشه، شما حاجتتو بگیر. بزا بد بدن خدایا آبد از تو هور میخواهد قصورش بین به جنت میگریزد از درت یارب شعورش بین نعمت جنت بلها را دهند جنت عشاوق تو سیمای تس لذا آنسو بما استوحش منع الجاحلون هایی که به معرفت نرسیدن وحشت دارن هایی که به این مقام رسیدن بهش اونس میبرزن و صحبو از دنیا به ابدانن ارواح ها معلقتا بالمحل الاعلا دقت بگنید و صحبو اینا سو مصاحبت میکنن معاشرت میکنن رخت آمد میکنن اونا دران با مردم از دنیا تو دنیا عبدان اینا جسمن با مردمن و ها معلقتا بالمحل الاعلا اما روحشون به یه جای دیگه آویزون شده دعا خدای این کارو بکنه دیدی در همین عشقای مجازی بعضی وقتا میگه اینا دیوونه ما داریم باش حرف میزنیم اون یه چیز دیگه با خودش میگه بله اون یه چیز دیگه میگه چون جای دیگه هست. فکرش جای دیگه است و اگر یکی کرم بگم یک بزرگی که من به بزرگیش ایمان داشتم واقعا کار کرده بود تو خودسازی نقل کرد که یکی البته من به واسقی نعرض می کنم یکی از دوستان ما نقل کرد که اون بزرگ برای من گفت من یه وقتی میخواستم یه جلسه حاضر بشم خیلی حرف ظریفه توی جلسه میخواستم حاضر بشم از منزلم راه افتادم احساس کردم ایک کمی باید پیاده روی کنم برای حالم لازمه تاکسی نگرفتم سه چار کیلومتر پیاده تا اون جلسه راه بود من حدود سه کیلومتر اومدم یه دفعه متوجهتم شدم جورابم و لنگه به لنگه پوشیدم حواسم نبود گفتم مهم نیست میرم جلسه بعد اون بزرگ پرموده بودن. اما حالا اگه بودی سه کیلومتر رو برمیگشتم جورابم رو یه رن من برام سوال شد خب ببینید موضوع مهمه خب اینا که غرقی عالم دیگه توجه جوراب ندارن چیه دقت کنید گفت یه وقت از دید پایین نگاه میکنید مردم بدیشو نیاد من جورابم مرتب باشه لباسم مرتب باشه چنین این گرفتار مردمه هیچ جردشی نداره یه وقت اونقدر غرق خداست اینجا رو توجه نداره حتی توجه نداره که جورابشو لنگه به لنگه پوشیده یه وقت هم به خودش میاد میگه مردم هرچی میخوان بگن بگن از پی رد و قبول امه خود را خرم کن چون که کار آمه جز خری یا خرخری گاب را یزدان شمارند از خری این ابلهان نوح را باور ندارند از پی پیغمبری اما اون مطلب سوم. اگه حالا بود برمیگشتم چرا و وقتی او نگاه میکنی از دید او بی عالم نگاه میکنی او حکیم همه عالم حکمت داره اون منظم همه عالم رو نظم بخشیده او بی حساب تو عالم قرار نداده چون او بی حساب قرار نداده منم منظم میشم به چقدر یه حرف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 معنای دعا توجه بشه این تکه نحجل بلاغه رو کار کنید توجه بیشتری بکنید یه تیکه دیگه با <تصفح> از خطبه دویست و بیست دوستانی که تو دانشگاه شریف بودن اون زمانی که شرح نحجل بلاغه تو دانشگاه داشتیم این خطوه رو من تو دانشگاه شعر کردم مفصل نوارش هم اینجا موجوده لذا الان شرح نمی کنم فقط اشاره می کنم خطوه دویست و بیست فی وصف دعا میخواد ما رو بکشونه به سوی الله دیگه با دعا بریم به سوی خدا خطبه دویست و بیست. چیه؟ فی وصف سالک سالک طریق الله. اونی که سالک طریق الله. میخواد تو طریق الله سیر کنه بره بالا امیر المؤمنین داره اینو وصف میکنه چگونه وصف کرده؟ قد احیا اقلهو و امات او حتی دق جلیلو ولتو و. لطف و برقل له لام كثير البرق صعبان له الطريق ببینید طریق مال این عالمه اما قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لتفقليز یعنی اول میره تو آدم از این سیر من الخلق الی الحق اون سبا پروردگار این ناخالصی ها رو زدودن ها رو بردن که تعبیری که اونجا به کار بردم اگه رفقایاتون باشه و لطفقالیزو گفتم بهترین تعبیر رو من از یک شاره نهد البلاغه دیدم دیدم قشنگ معنی کرده او میگه شما این خراتی رو دیدید وقتی میخوان مثلا چوب و کنن یه چیز زینتی قشنگ زبری داره هی hey, رنده میکنن سماده میکشن چه میکنن بر میکنن یعنی یه ذره زبری هم داره دست میزنه اینا رو میزنن در راه الله هرچی زمختی از خودش دور کنه ایزشتی اشتیار رو دور کنه هی hey, خودسازی کنه خودسازی کنه به اینجای که رسید حالا از بالا برمیگرده به پایین طعبان اللحد و وسلك به سبيل حالا دیگه این راه براش مشخصه که چجوری باید حرکت کنه فتاطافت اول ابواب الا باب از این در به اون در از اون در به این در ولی وقتی رسید به اونجا از اونجا که برمیگرده میگه باب سلامه رو پیدا کرده دیگه میدونم چه کار باید بکنم آقا چی میگه حساب بگم تو راهی تو بگی برو جلو خب این ارزش نیست که حالا خلاصه ارز کنم انسان به اونجا برسه دقت بفرمایید. مثال زدم جسم در آلم جسم انسان تو هوای سالم تنفس کنه خب، ای غیه ها سالم تره یه هنجرش سالم تره این کیفیت حالا از نظر طبی آقایون باید بگن حتی نشاط ظاهری چهره نگاه میکنی بشراشتره این داره آب گبارا میخوره خب معلومه حالا تو آلم روحی تو هوای الهی داره سیر میکنه چی باد ماره ببره تو هوای الهی یکیش دعاست لذا گفتن مثلا شما ده بار بگید یا الله ده بار بگید یا رب سه بار بگید یا زلجلال والاکرام شش بار بگید یا کریم این روایات میگه من دارم چرا؟ مثلا گاهی ممکنه طرف یک بار بگید یا الله اصلا زیر رو بشه همه هوای. یه بارم صد بار میگه یا الله این اللهی که از لفظ برمیخیزه اون اللهی که از اعماق جانش برمیخیزه میگه مراحلی رو پشت سر گذاشتم، این در و اون در زدم سوختم تا به این معنا رسیدم که از اعماق جانم بگم یا الله یعنی هرچه تو نیست تویی و هرچه هست تجلی تو منای تو هیچه معنی هو با تو بگویم که چیز، اوست دگر این من تو هیچ نیست کم کم به اونجا میرسه. نزا وقتی میگه الله لا تمام وجودش به لرزه در میاد. اینو باید با تمرین دعا و وقت وقتی به اونجا میرسه میگه وقتی امیرالمومنین علیه السلام را دیدم تو نخلستونهای مدینه تعبیری که حدیث داره اینه مثل ماهی که از آب گرفتی میخواد جون بده چجوری اینجوری علی داشت اومدم در خانی از زهره سلام و للیه ها در زدم بیبی بی جون بی علی چیشه داره میمیره؟ فرمون چی بود؟ گفت تو نخلست اونها ناله که اون حال مناجات علیه بسید تو حال خودش باشه و حال مناجات علیه همینجه اشاره کنم قبل از حدیث خوندن خدایا. یا تو <تصفح> رو به جان علی تو رو به مقام علی تو رو به اون معرفت علوی تو رو به اون دعاهای علوی ما را در مسیر معرفت خودت عشق به خودت حرکت صحیح به سوی خودت یاری من بفرما مخصوصاً هفته هفته امیرالمؤمنین هفته غدیره دوشنبه ولادت امام هادی علیه السلام این شب تو مشهد جلسه ولی دانشگاه یاد جاتون خالی اشاره کردم گفتم در جوار امام رضا ایام قدیر من چیزی نمیفهمم فقط میخوام اینقدر بگم به شما خدا فیاض علل اطلاقه حالا اگر عمری بود شب جمعه آینده ای بحث این بحثو اینجا طرح میکنم ان خدا فیاض علل اطلاق همینجور داره فیض میده خدا آنی فیزش قطع نمیشه ولی با قرآن با روایت با گفته خود خدا ما میتونیم حرفو بزنیم که هیچ فیضی از فیض خدا از تر از فیض ولایت ولی الله نیست لذا به این فیض که میرسه میگه اطمان تو علیکم نعمتی هفته یاد بود فیضان فیض بگیرید ما بحثمون ایام راجع به دعاست شب جمعه آینده مخوابیم بحثو قطع کنیم بریم تو اون بحث اما خوش به حال اونا گرفتید برای ما بگیرید یکی از این جوان های خوب دانشگاهی که دوستشم دارم جلو حرم دست همه تو خدا بگو چی بخوام حضرت گفتم من چیکارام بزرگا به ما یاد دادن ما اونی که یاد دادن بهت میگم برو جلو ذری حضرت واسه بگو آقا جون از خودت خودت میخوام خودت رو میخوام خودت رو میخوام. خود میخوام یعنی چی خودت میخوام اینو بفرمایید شما کی هستید خدا شما را چه مقام قرار داده نه اینکه فقط بیام جلو ذری واسم یا امام رضا قرض دارم یا. اینا رو مطرح کنید اب نداره من نمیخوام خوشک مقدسیه از اون رو در بیارم ولی در مرحله اول رو از خودت خودت میخوام. گفت دیگه چی بخوام؟ گفتم اینو بزرگا گفتن من میگم من که بچه تر از این نمینرفا رو بفهم. بگو آقا جون شماها یه عده اصرار دارن رو به شما بچسبونه. بالاخره شما جوابشو نمیکنید. یه عده شما اونا رو جدا میکنید میخرید آقا کاری کنید ما از اونا باشیم که ما رو میخرید ما رو بخرید. خب اینا کیا رو میخرن. نوریان مر نوریان را طالبان.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 لذا اومدن گفتن حالا که میخواید تو عالم دعا بیایید اون هفته به مناسبت بحث کربلا اشاره کردن وقت زیقه خیلی طول نمی‌دم تیمنن و تبرکم بعضی از این قسمت‌های روایت رو الان بخونیم بقیه شو برای جنببندی ان شاء الله در آخرین جلسه ذلت که هفته بعد درس کنم یکیش که هفته قبل به مناسبت بحث کربلا اشاره کردم الان یاداوری میکنم رد میشم. زیدن، ورزیدن اصرار ورزیدن مسر بودن و خسته نشدن آقا دستگاه الهی که میفهمه سنت خدا رو میفهمه تو عالم اعمال میکنه کنه مثلا فرض بفرمایید الان شما می کارخونه تصفیه فلان می سازن. کارخونه مثلا فرض کنید که ایجاد فلان مواد غذایی اینا میان اونچه که خدا در نظام عالم قرار داده از اون سوژه میگیرن ولی میارن تو عالم ماده و طبیعت با اندازه توانه خودشون با این دستگاهای اینچنانی دارن اعمال میکنن توی این جنبه‌های معنوی قضیه هم همینطوره دقت بفرمایید مثلا شما میبینید در وادی معنوی حتی در وادی مادی تو عالم ما فعلا یکی که همچین سنگ مفت گنجش مفته شما میگی خیلی همچین دلش هم لک نزده برای این قضیه گیرش اومد اومد نی اومد, اومد. خیلی خیلی نمیارزمم برای این وقت بذارم اما یکی مسر ویل نمی کنه. چه تو وادی معنوی باشه اون راهنمای معنوی میگه این میخواد دست از طلب ندارم تا کام دل برای یا جان رصد به جانان یا جان به تندر این مصر بودن نظامی است که خدا بر عالم قرار داده که ما تو آلم داریم اعمال میکنیم یک در دعا مصر بودن شب پاشو دعا کن صبح پاشو دعا کن تو حرم دعا کن تو امامزاده دعا کن تو مسجد دعا کن تو حسینیه به جایی که با هم دیگه بشین حرف بزنیم بشین دعا کن تو راه داری میری با خود دعا کن این دعا فقط این نیست که خیلی عذر میخوام خیلی عذر میخوام من یه کمی مسی که گایم یه حالا عوامم تو عالم بی ادبی رفتم رفتن منو ببخشید پی پی پی پی کردن نیست که بعضی وقت آن من گفت که سوت صلواتش اللهم الله یجری بشه تونت هم و من دارم ذکر میگم خدایا ببخشید بندی خدا ایام عید عبدال نداره و یه آقایی توی اتوبوس نشسته بود و آقایی که زن و مرد قاتی سوار میشدن خیلی هم خوش که مقدسی در می آورد و آدمای بی حجاب که بودن پجابا اونایی که خیلی بد قیافه بودن میومدن تو اتوبوس سوار میشن میگفت لا اله اونایی که خیلی خوش قیافه بودن نگاه میکرد الله اکبر رونودم فهمیده بودن باج آقا چنتا الله هم داره میاد حالا ذکر توی این وادی نه یا نه حتی حالا میخواد سادس ما دعا کردن به همون معنایی که آقا پشت اتومبیلت نشستی از اینجا داری میری خونه صبح داری میری سر کلاس چند لحظه بیکاری همون لحظه بیکاری خدا منو با حال خودم روحا نکن الهی لا تکلنی اله نفسی ترپت اینن عبدا اما توجه یعنی چیا زبان نباش یعنی بفهمم گاهی وقتا خدا ما رو دوست داره ما صادقانه میخوایم، میاد ما رو میندازه توی یک وادی به اونجا میرسی میبینیم مثلا مشکلی داری حاجتی داری هرکی هم میخواد کمکت کنی هیچ کاری ازش بر نمیاد نخصوصا خدا گایی میدازه توی این مثل اسپند رو آتش به پری نه خودت میتونی کاری بکنی نه همه قدرت هایی که تو رو دوست دارن میتونن کاری بکنن اونجاست که از اعماغ جان میگه الهی و ربی من لی غیر و حالا بیاد دای کمل بخونه از اعماغ جانش میگه لمس کردم چشیدم الهی و ربی من لی غیر و قیر از تو من میتونم داشته باشم الهی لا تکلنی اله نفسی ترفیطه اینن عبدا وقت اون میشه مثل گفتهی پیغمبر اسلام در قوجش شما به اندازهی که و پیغمبرید ام سالمه میگه پیغمبر تو حجره من بود نیمه های دیدم از حجره خارج شد نگران حال پیغمبر بودم دنبالش رفتم دیدم که تو مسجد و نبی سر به سجده نهادن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 ضروری زاد قالب ها اینو بفهمیم لذا مصر باشیم مصر به چی خدایا ما رو رها نکن خدای دستمون رو بگیر خدای ما رو تو بادی خودمون ببر خدایا نفس رو بیچاره هم میکنه یک در دعا مصر بودن چون حدیثشو خوندم اجازه دیگه تکرار نکنم دو فقط در مشکلات خدا رو نخونیم حالا حدیثشو براتون بخونم چقدر زیباست؟ اصول کافی جلد دوم عربیشو ارزم کنم صفحه 472 حدیث 4 و 5 رو سری میخونم رد میشم قال ابو عبدالله الله علیه السلام امام صادق سا... فرمودند یک صلوات نعت بفرما امام صادق علیه السلام فرمودن این الدعاء سرخا یستخرج الهواج فلبلا دعا در موقع آسایش و آرامش و بدون گرفتاری بیرون میکنه گرفتاری ها رو در موقع برآورده میکنه هواج رو در موقع بلاها یعنی اینجوری نباشه که انسان وقتی به یه بلای مبتلا شد بیاد و خدا بیفته حالا چه که داره واخاص میشه یا یه وقت قم مشرف بودیم کنار زریه بنده خدایی حال خوشی داشت اشکی میریخت من به یکی از دوستان که اهل معناسی کمیام او ظاهرا چشم دلش بازه ولی ما که چششون سرمونام بی عینکی نمیبینه ما توجه الفا نبودیم من گفتم آقا ببین گوی قرض داره اومدی اینجا بورو سوال کو ببین هست یا نه من رفتم جلو آقا حالتون چطوره فلان مارم رام دعا کنی گانه دعا یه قرض دارم اومدم اینجا مسته که خدا خواست از زبانش در اومد اومدم گفتم آقا راست میگه قرض داره اب نداره اشتباه نشه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 دعا فرخا. اگر کسی میخواد در گرفتاری ها به اون توجه بشه باید در حالت آسایش دعاشو زیاد کنه انعبی عبدالله عليه السلام حدیث شماره پنج قال کان جدی یقول امام صادق فرمود جد من زیادی رو میفرمود کان جدی یقول عبارت و سبک حدیث رو ببینید تقدمو فدعا فا این العب ازا کان دعا فنه زلبه البلا فدعا قیل صوت معروف و ازا لم یکن دعا فنه زلبهی بلا فدعا قیل اینه کنت قبل الیو چقدر قشنگ حدیث تقدر کنید پیش دستی کنید در دعا کردن زیاد دعا کنید فا این نلعب ازا کان دعا وقتی بندهی زیاد دعا میکنه نزله به بلا اما حالا دیگه یه بلایی هم روش نازل شد فدا دوباره داره دعا میکنه قیل گفته میشه فرشته ها سوتون معروف این صدا آشناس این همیشه دعا میکرد این قبلا هم این سوتو داشت و اذا لم دعاء اما نه زیاد اهل دعا نیست زیاد با خدا این ارتباطاتو نداره فنزله فن به بلا فدا حالا یه گرفتاری تا پیدا شروع میکنه دعا کردن قیل گفته میشه فرشته های هم میگن ای نکن تا قبللیو کجا بود حالا؟ ما تا صدای این آقا رو نمی شنیدیم. اونقدر یه معروفی که یه بار عرض کردم یه بنده خدا اومد پیش پیغمبر یا رسول الله بازم بده دعایی بفرمایید حاجی سردوطلاق قانع نشید آقا دعا کنید حضرت هم دعا میکنه یه سرمایه به من بدید برای کارم حضرت یه دو درهمی به ایشون دادم ایشون رفت و یه توبخ پرما خرید و اومد و پرما فروشی میکرد دست فروشی کم کم کارش گرفته شد یه دکه بعد شد یه مغازه و این دفعه شد صادرات و واردات هر چی که کارش بالا میرفت نماز جماعت کمتر میومد اولا مرتب صف اول پشت سر بود. کم کم سب دوم و سومو خارج شد. یه روز پیغمبر از جلو مغازش رد شد. و دل ابل ها رو میبندن و با کشتی برای فلان جا بفرستیم، با هواپیما برای فلان جا بفرستیم. چه و چه می‌کنه؟ فلانی آ یا رسول الله قربون شما بله کجایی؟ آقا وقت ندارم سلام بخو دو خارونم یا رس... هر اون دو درهم ماره بدیم یا بیشتر هر چی دو ما رو بدیم دو درهم رو داد. کم کم کار سبوک شده، سبک شد دیگه کار نمیگرده این دفعه دید از ساعت 4 اون 5 عمر یا رسول الله. تظییم عرض کردیم شما گفت حالا کجا بودید ماج بود. بعضی‌ها یک کمی تو دنیا میرن خدا فراموش میشه. دعا در همه حالات تمرین کنید. لذا حتی داریم روایات هر چه دنیا به شما بیشتر رو میاره بیشتر دعا کنید. بیشتر گریه کنید. بیشتر تواضع نشون بدید. مفاهم دعای مکارمال اخلاق رو بخونید مفاهم دعای آلیت المزامین رو بخونید دعای اسمی قشتن دعای آلیت المزامین دعای مکارمال اخلاق اینی با استولو اتممم مکارمال اخلاق تو دعای مکارمال اخلاق یه که خدایا کمکم کن هرچ در نظر مردم بزرگ جلوه می کنم پیش خودم خودمو کچکتر ببینم چه کسی خودشو کوچک می بینه وقتی در مقابل خدا شما صبح تا شب صد نفر بیان تظیم از کردم قربان حال شما چطوره چنین چنان اما یواشکی بروی گوشهی فرشو بزن کنار سرطه بزر رو خاک الهی عبید و بید و کبه بابک حقیر و کبه بابک زلیل و کبه بابک مسکین و کبه بابک اینو با اعماغ جان بگی باید به معناش توجه پیدا کنی خدایا بی تو من چیم باور دارید یا نه اینا بحث رو قبلا من دارم یادآوری میکنم شما که از اضطراب عقلی که به راحتی معنا را قبول دارید ممکن بدون ربط به واجب چیز اصلا ممکن عین ربطه ممکن غیر از ربط هیچ چیزی نیست به قول بزرگان معنی حرفی دارند نه معنی اسمی و فعلی حرف بدون ارتباط با اسم و فعل که معنا پیدا نمیکنه من بدون تو هیچم وقتی بدون تو هیچه هم حالا یه عده میگن قربان شما چنین چنان من با خودم قلبت کنم من, من بی او که هیچنان او یه آن به خادنهایت از ما برداره که ما هیچیم لذا در همه حالات باید این دعا باشه به خصوص وقتی یه مقداری امکانات رومیاره ارتباط معنوی بیشتر بشه چون دنیا گل میزنه شاگرد اول شدی اکست تو روزنامه انداختن و لوه تقدیر دانش کده به اداد اونجا برو بیشتر سجده کن یه مقاله نوشتی ممتاز شد اون چند شب بیشتر صورت رو خاک بذار نکنه دور برداری اینه سوم، سعی کن رقبت قلب پیدا کنی و حالت خلوص در تو زیاد بشه هرچه رقبت قلب بیشتر شد استجابت دعا بیشتره و حال ارتباط معنوی نشون میده داره برقرار میشه حصول کافی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 هر چیزی میشکنه بیارزش میشه الا دل که میشکنه که رنبه ها میشه الهی سینه ایده آتشف روز در اون سینه دلیوان دل همه سوز هران دل راو که سوزی نیست دل نیست دل بی سوز غیر از آب و گل نیست دلی که امام صادق علیه السلام میفرماد ازارق قع حد و کنفل وقتی که رقعت قلب پیدا کردی. حس کردید دله و همین جهت ارزش روزی امام حسین رو بدونید معمولا با ذکر مسائب عبیرد الله دل میشکنه با یاد مظلومیت اهل البیت آدم دلش به درد میاد با توجه با اولیای الهی لطافت قلب حاصل میشه فَإِنَّ الغلبه همانا به درستی که قلب لا یرق حتی یقلست رقت پیدا نمیکنه مگر اینکه خلوص در او ایجاد میشه قلب رقت پیدا نمیکنه و قلب خالص چیه القلب قلبا حرم الله ولا توسکن حرم الله غیر الله قلب خالص یعنی غیر خدا توش نباشه دعا اونجا است که دل به خدا داده بشه کی دل به خدا داده میشه وقتی رقت قلب پیدا بشه یکی این سوم یا چهارم اگه سوم بود چهارمی رو بخونم اگه چهارم بود پنجمی دستور دادن سعی کنید در بعضی موارد داره تنهایی دعا کنید اونو بعد میگم اما داره که این قسمتی که راجبه دست جمعیه بیاید تو جمع دعا کنید شاید خدا به انایت یه دل شکسته یه قلب خالص یک اشک صادقانهی که از یک چشم در جمع جاری شد به بقیان توجه بکنه صفحه چارسد و, و هفت حدیث شماره سه. امام س... صادق علیه السلام فرمودن کان ابی علیه السلام امام صادق فرمودن بابام اینجوری بود اذا احزنه امرون او حزنه امرون وقتی یه امری او رو محزون میکرد یه قضیه پیش میومد جمعن نسا و سبیان دعا و امن زنا رو جمع میکرد بچه ها رو جمع میکرد یه ادرومینشون میفرمود که حالا من دعا میکنم شما دست جو آمین بگید امام که خدا به خاطره این جمع یک انایایتی به بقییم بکنه لذا در نماز باران مخصوصا دستور داده شده بچه ها جلو اندازید پیرمرای ریشسفید و جلو اندازید پیر رو جلو اندازید اندازی، اونهایی که حالت شکستگی بیشتری دارن اونا رو جلو اندازید اونا دعا کنن شما پسترشون. حالا اگر باران نمیبار ما مشکل داریم اینجوری گفتن ناله بزنید اگر دل ما قسی شده باشد و این زمین سفت شده نیاز به ریزش باران عنایت الهی داشته باشه اینجا چقدر باید دعا کنیم وقت اینجاست که انسان اگه احساس کرد تمام وجودش رو حالا من میخواستم از امام هادی علیه السلام که دوشنبه ولادت شونه چیزی بگم وقت اجازه نمیده فقط یه اشارهی بکنم انشالله حاجهای غفاری ما رو به فیز برسونن و امیدوارم حال دعا در همگی ایجاد بشه و از همهتون میخوام دعا که میکنید دوستانتونم دعا کنید دعایی دست جمعی کنیم که خدا روح ما را روح عالم معنا بکنه قلب ما رو تو عالم معنا ببره امام حادی علیه و السلام ببینید حالا اینا فرصت میخواد من فقط اشاره میکنم شما خودتون اهل فضل و مطالعه اید اینو بگیرید سبک امام شناسی از امیر شروع کنید تا بیایید به امام صادق از امام صادق شروع کنید تا امام رضا از امام رضا شروع کنید تا امام حادی این سوژه تحقیق امیر وقتی میخوان امام شناسی رو تو نهج البلاغه و خطبه هاشون بیان کنن حتی در زمان خلافت ظاهریشون که قدرت هم دستی میگه که آیا ما رو با معاویه مقایسه می‌کنید ما چونینیم ما قوی تریم ما بالاترین یعنی هنوز مردم تو مقام مقایسه اهل بیت با بغیان هنوز کلاس اول ابتداییه حضرت میخواد ایناری که من کلاس بیاره بالا هم آمادگی نداره بگه من کیم لذا اگر می من کیمم مثل خطبه شقشقیه لقد تق مص ها ابنا عبیقا ها و و ان نهویی اند علی من ها محل قطبه منن رهاین حد روامن سیل ولا یا غاائلیت اگر این رم میفرماید می فرمایید میفرمایند ش قدم قدر درره و ن نیست اینناره بگم. یه شق ای است که از زبان من خارج شد یعنی هنوز آمگی شنیدنی حرفان نیست ولی امام صادق یه کمی بالاتر میاره. میگه شیعه مایی در گفتم برو تو تنور باید بری این معرفت بیاد بالا امام رضا علیه السلام شما اون حدیث امامتی که امام رضا مطرح کرده تو کافی هم هست تو تو افاما امام اینه امام اینه یعنی کلاس ها اومده بالا وقت امام حادی تو زیارت جامعه وقتی رسید به اونجای که کلاسات ها شده هست. اونایی که بناس بیان رضا میاد امام هادی علیه السلام تو زیارت جامعه وقتی میخواد امام رو معرفی کنه میگه برو جلو امام واسا بگو بکن فتح الله و بکن یختم خلقکم الله انوارا فجعنکم به ارشهی مهدقین حساب الخلق علیکم و ایاب حملتیکم این زکر الخیر کنتم اصله و فره و حاکزا یعنی چی؟ یعنی شما این و امشب امام هادی علیه السلام عرض کنید یابن رسول الله شما به ما یاد دادید ما منشالله این معرفت رو پیدا کردیم تعبیری غیر از این بلد نیستم شما همه کاری دستگاه خدایید ما میخوایم به سوی خدا بریم شما همه کاری دستگاه خدایید میخواییم دست ما رو بگیرید ما رو به سوی خدا ببرید شمایی که چجوری دل میسوزندید برای اونایی که بخوان این قضیه رو هم بگم دیگه من ایام ایده اجازه بدید مادر متوکل متوکل خونخار عباسی که معلوم مادرش کمکی روحیه کار خیل روی ناداشت هر چند وقت یه بار از پول پسر کش میرفت میداد برای کارهای خیل زرنگیست دیگه واقعا وزرو و بال متوکل میبر او که مسئله خیل خرج میکرد این زرنگی واقعی این هاست <تصفح> <تصفح> یه دفعه یک رقم بالای 100 هزار دینار خیلی پول اینو <تصفح> اینه گرفت و یکی از مهمورینی که بهش اعتماد داشت اتفاقا این شیع بود داد به این که ببر تا قروب بین فقرا تقسیم کن بیا این تا هر چی تونه سخ رقم خیلیه پنسد هزار دینارشو خرج کرد از پنجا هزار دینارشو خرج کرد پنجا هزار تومان همسایه ایده شیعه و سید اومد پیشش گفت فلانی شنیده مادر متوکل پور زیادی بدده بله کن من پسر زهرام سید بود، من اولاد زحرام فقیرم شیام تو هم که میشنسی یه کمکی به من بکن رفت یه مقداری از این پولشو بده خانمش از پشت پرده اندرون کن وزرزت زهرا خجالت نمی کشی بچهش اومده دمه در تو موقع بده همه رو بده بشه بره این احساساتی شد همه رو آورد یه داد به این بچه سید این رفت اومد اندرون وقتی احساسات فرو و عجب کاری کردن اگر متوکل بفهمه من 50000 دینار از پول او رو یه جا شیعه سید دادم خونه رو سرم خراب میکنه متوکل کسی که قبر امام حسین خراب کرده شخم زده اگر رحم میکنه به کسی به زنش گفت چه کردی سرمو به باد دادی زن گفت نترس بیا نماز بخونیم متوسل بشیم از زهرا کمک بخویم اینا اینجا مشهور نماز شد. از اون طرف اون آقاسهه پول برداشت رفت خونه خوشحال ارزمون میدیم گرفتاری منحل شد یه دفعه رو کرد به همسرش گفت راسی احساسات که پروننش اگر متل بفهمه این همه پول یه جا آوردن به ما دادن ما چیکار کنیم اونام ترس برشون داشت گفت بیای متوسصل به جدا حضرت نظت زهرا سلامله عليه ها بشیم که انایتی بکنه مشکل از ما حل بشیم اینا مشغول دعا شدن و اونا مشغول دعا شدن حالا این از وسط روز یه مقداری به اصل رسید در این بین مادر متوکر بعد از زور خوابیده بود گفت که تو عالم خواب دیدم حضرت زهران سلام الله علیه ها تشبا به من فرمودن که این پنجاه هزار دینار که رسیده من راضیم و اگه میخوای راضی باشم با پنجاه هزار دینار دیگه به همین فرد بدید از خواب پرید این پنجاز رو به کی دادن؟ حالا از اون طرف اون رفته خدمت امام حادی علیه السلام از امام حادی خواسته برایش دعا کنه امام حادی هم دعا کرده که حالا تو دستگاه مثل متوکل کار به کجا میرسه این پوری فرستاد برید این معمور منو بیارید معمور با همسرش داره دعا میکنه متوصل شده گفت که مادر متوکل پیک فرستاده که الان بیا بزنش گفت دیدی خبر رسیده فهمیدن دیگه معلومه که باد بریم کار ما تمامه بزنش گفت من وصیت هامو میکنم من برم گردنم و میزنن دیگه حالا من به خاطر از زهرا کردم هنوز از در خونه بیرون نیومده پی که دوم اومد چرا نمیای مادر متوکل بر شما کار داره یقین کرد همین که وارد کاخ مادر متوکل شد تا چشمش به مادر متوکل افتاد گفت 50000 به کی دادی ودی اما چیزی که میدونی دیگه گفت مأمورین گزارش دادن تا رفع فرض بزنه با حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن 50000 دینار دیگه باید به او بدی تا راضی بشه بیا این 50000 دینار دیگه را هم بردار ببر یه نفس کشید 50000 دینارو گرفت اومد رفت سر راه خونه نرفته رفت در خونه اون آقا سید در زد تا در زد آقا از پشت در گفت. ها 50000 دینار دیگه را آوردی گفت تو از کجا میدونی گفت مام الان در حالت ترس و لرز بودیم خوابمون برد جدم هم زهرا سلام الله علیه ها رو خواب دیدن به من فرمود نگرون نباش ما موازه بتونیم یبن رسول الله شما یه اشاره کردی مادر متوکل از این رو بانرو شد و فرمودید موازه بتون هستیم مام امشب با دلی شکسته در این ایام شادی میخوایم بگیم شما رو به جان مادرتون زهرا سلام الله علیها. ها یک توجهیم به ما کنید حوای مارم نگه دارید صلی الله علیک یا مولا یا علی ابن محمد ایوها الهادی یا ابن رسول الله یا حجت الله علا خلقه یا سیدنا و مولانا اننا توجهنا و استشفعنا و توسلنا الله الله، مقدمنا که بین یده حاجاتنا يا وجه حندا الله إشف لنا عند الله والسلام عليكم ورحمة الله.